زار افسان برنابی از گروه جوان و فرهنگ. به نام خدا خالق زیبایی ها سلام همه ما افسانه ها رو دوست داریم و از شنیدن و خوندن اونها لذت میبریم شاید به این علت که افسانه ها به دوران کودکی بشر تعلق دارند وقتی افسانه ای رو میخونیم یا میشنویم انگار سالهاست با آدم ها، سرزمین ها و ماجراهای تلخ و شیرین اون آشناییم افسانه رو از مردمان سرزمین ترکمنستان براتون نقل میکنم به نام افسانه تچریش برگرفته از کتاب افسانه های مردم دنیا با ترجمه ای از عبدالرحمن دیجی محمد قطا وفت الله دیدبان روزی روزگاری پیرمرد و پیر زنی در عرابه نمدی زندگی میکردن اونا همیشه از جایی به جای دیگه کوچ میکردن پیر مرد حیوانات رو به چرا میبرد و پیرزن هم به کارهای خونه میرسید اونا فرزندی نداشتند که در انجام دادن کارها به اونها کمک کنه گاهی شبا پیرزن زن کنار اجاغ میشست و گریه میکرد و با خودش می‌گفت: ای کاش.» دختر داشتم تا تو تو کارا به من کمک کنه ای خدا پیرمرد که دلش برای زنش میسوخت تصمیم گرفت به هر قیمتی شده این آرزوی زنش رو برآورده کنه بنابراین روزی که هیونات رو برای چرا به جنگل برده بود اونجا شاخی از درخت بلوط برید و از اون عروسکی ساخت پیرمرد عساری از 99 گیاه مختلف درست کرد و دو سه قطره از اون عصاره گیاهی رو روی عروسک چکوند. عروسک یهو جون گرفت و پلکاش رو بهم هم زد. پیرمرد به خونه برگشت و با خوشحالی پیر زن رو صدا زد و گفت: بیا بیا بیا, بیا اینم دختری که آرزوش داشتی زن. از فردا اون به تو در انجام دادن کارها کمک میکنه. پیر زن نگاهی به عروسک که بلوته انداخت و گفت وا چه دختر زشتی، چقدر چاقه، چه دستوپای بزرگی داره مرد اون, اون فقط میتونه کارای سنگین انجام بده پشم گوسفندا رو بچینه و نمت درست کنه پیر مرد خنده کوتاهی کرد و گفت حالا دیگه ایراد نگیر زن شاید فردا برات عروسک دیگه ای درست کردم. پیرزن کت نمدی کهنه ای به دختر داد که بپوشه. چند دقیقه بعد دختر رفت تا پشم گوسنده رو بچینه. پیرمرد هم به زنش قول داد که فردا اول وقت به جنگل بره و عروسک دیگهای برای اون درست کنه. دای اون روس پیر مرد به جنگل رفت و از شاخی درخت کاج عروسک دیگه درست کرد و با کمک ثاروری گیاهانی جنگلی سهرامیز اونو زنده کرد و پیش پیرزن آورد اما این بار هم پیرزن با دیدن عروسک گفتههه این دیگه چه دختریه خیلی زشته مثل چوب کبریتی میمونه که روی سرش مو گذاشته باشن این فقط به درد دوشیدن گاوا و گوسفندا میخوره من من یه عروسک دیگه میخوام پیرمرد باز هم بزنش داد که فردا صبح به جنگل بره و یه عروسک دیگه به خونه بیاره این بار پیرمرد عروسکی از چوب گردو ساخت باز پیرزن زن عروسک رو نپسندید و گفت آه، آه، این کمرش کجه ببین نه من اونو نمیخوام اونو بفرست بره از بیابون خار بیاره تا اجاغ رو روشن کنم و چند تا کلوچه بپسم پیر مرد آهی کشید و گفت امان از دست رات تو زن باشه باشه فردا یه عروسه دیگه برای درست می فردا باز پیرمرد به جنگل رفت و از درخت چنار بلندی که سر راهش بود عروسک ای درست کرد و به تصور اینکه این, این دفعه دیگه زنش حتما اونو میپسنده به خونه برگشت اما این بار هم پیرزن از عروسک استقبالی نکرد و گفت نه نه نه این دختر خیلی کوتاهه اون،, اون فقط به درد درست کردن حلیم و آش گندم میخوره من یه عروسک دیگه میخوام پیرمرد این بار هم با صبوری به جنگل رفت و خلاصه نه عروسک از های مختلف درست کرد اما پیرزن از هیچ کدوم اونها خوشش نیمد و به هر کدوم از اونها کاری سپرد به یکی گفت لباسا رو بشوره یکی دیگه گاو و گوساله ها رو به چرا ببره یکی آشگندوم درست کنه و خلاصه همه رو به کاری مشغول کرد به بعد رو کرد به شوهرش و گفت اینا اینهایی چکدوم نمیتونن دختر من باشن مرد من یه دختر زیبا میخوام فردا برو جنگل و زیبا در این دختر رو برای من درست کن پیرمرد آهی کشید و گفت باشه باشه تمام سعی و تلاشمو میکنم تا زیبا ترین دختر رو برای تو بیارم مرد به جنگل رفت و ام با اقسام درخت های جنگلی رو دید و با دقت به اونا ها نگاه کرد با خودش گفت چه از کدوم درخت میتونم زیباترین درخت رو برای زنم درست کنم ها؟ درخت افرا درخت اراریا و چشش افتاد به درخت بید مجنونی که روبروش قد علم کرده بود پیر با خوشحالی گفت خودشه خودشه از چوب این درخت بید مجنون میشه زیباترین و بهترین عروسک رو ساخت آره بید مجنون ترین درخت برای ساختن عروسکه من من مطمئنم که این بار دیگه زنم از این عروسک خوشش میاد و اونو میپسنده حلاسه پیرمرد شروع به کار کرد و چند ساعت بعد دهمين عروسک از چوب درخت بید مجنون ساخته شد. پیرمرد با خوشحالی عروسک رو به خونه برد. پیرزن به محض دیدن عروسک از شادی فریادی کشید و گفت: وای خدای من این دختر چقدر زیبا و قشنگه. چه دست‌ها و پاهای کوچیکی داره. موهاش موهاش چقدر بلنده. چشاشو نگاه، انگار هسته ی آلوه، این, این، این، این، این، همون دختر قشنگیه که من آرزو داشتم من اسمشو میذارم تطریش دختر زیبای من بعد از خوشحالی پیرزن دور خود شرخید و عروسک رو بغل کرد و اونو بوسید. پیر مرد هم از اینکه بالاخره زنش به آرزوش رسیده خوشحال شد بیرزن با عجله رفت و برای تطریش یه لباس زرد رنگ آورد و تنش کرد و یه پیشبند قشنگ هم براشد. از فردای اون روز دختر کنار میز نشست. پیرزن به عروسک های دیگه دستور داد و گفت شما نه دختر باید از دخترم تطریش خوب مواظبت کنید تا بارون اونو خیس نکنه، آفتاب به صورتش نتابه و پشه های مزاحم پوست سفید و نازکش رو نیش نزنند. دخترهای چوبی و بر تطریش میچرخیدند هر کدوم از اونا برای اون کاری انجام میداد یکی با شاخه درخت اونو باد میزد زد. یکی براش کلوچه و آش گندم میپخت یکی برای اون چای درست میکرد یکی براش اصل می آورد و تو دهنش می زشد. یکی اونو به رخت خواب میبرد و روش لحاف میکشید و براش خسته می گفت. خلاصه نه دختر چوبی تموم وقت در خدمت تطریش بودن. به تطلیش از این همه توجه و رسیدگی هر روز لوس و لوستر و مقرور و مقرورتر میشد روزها گذشت خوهرها کار میکردن و تطریش توی رخت خواب میخوابید و خودش رو برای نه دختر و مادرش لوس میکرد می میگفت وای مگه میشه به دختر زیبا و زریفی مثل من این غذاهای پرگوشت و چربی رو داد شما میخواین من بخوردن این غذاهای پرگوشت و چرب زشت و چاق بشم من من از این غذا نمیخورم این غذای دیگه میخوام دخترای بیچاره فورا برای تطریش سوپ آماده می کردن. اما این بار هم تطریش بهونه میگرفت گرفت و میگفت. وای این غذای بی رو به من میدین تا دست و پام لاغر و دراز بشه نه من این سوپ رو نمی کورم از سر ناچاری برای تطریش چای آوردن اما تطریش باز هم بهونه آورد و گفت وای شما میخوایین پوست سفید من جوش بزنه و من زشت بشم نه و بعد با عصبانیت به مادرش گفت مادر میبینی اونا برای من قضاهای بد درست میکنن اونا میخوان من زشت و چاق و بد کل بشم و مادر هم با عصبانیت بر سر دخترها فریاد میکشید و میگفت چرا دقت نمیکنین ها؟ وای به حالتون اگه امشب قضای بدمزه درست کنین بگه میشه به این دختر زیبا و خوشکل بد داد، دخترای حسود بدجنس دخترا در حالی که سخت، ناراحت و عصبانی بودن به هم نگاهی انداختن و هر کدومشون در فکر این بودن که درس خوبی به تطریش لوس و نونور بدن یه روز دخترای چوبی که حسابی از دست لوس بازی های تطریش عصبانی شده بودن غذای چرب و پرگوشتی رو برای شام اون کردن موقع صرف شام تطریش به محض دیدن غذای پرچرب و گوشتی که خوهرها براش درست کرده بودن از جا پرید و فریاد زد اه اه اه چه غذاییه که برای شام من درست کردیم؟ شما شما خیلی بد جنسین میخوایین من با خوردن این پر پرگوشت و چرب چاق و زشت بشم؟ شما خیلی بدین؟ به بعد رو کرد به مادرش و گفت من دیگه از دست این بد جنس خسته شدم دیگه اینجا زندگی میکنم حالا که اینطور از اینجا میدم پیرزن به گریه افتاد که تطیرش دختر کوچولوی من نرو پیش من بمون خواهش میکنم تاتریش نگاهی به خواهرهای چوبی که هر کدوم مشغول کاری بودن انداخت و گفت شما خیلی بدین من دیگه تحمل ندارم میرم میرم یه جای دیگه دخترها که از خشم پیر زن میترسیدن شروع کردن به اصخاهی از تاتریش رو گفتن خوهرجان ما رو ببخش از اینجا نرو خواهش میکنیم دیگه دیگه هر قضایی که تو بخوایی و دوست داشته باشی برات درست میکنیم حالا حالا فقط به خاطر مادر پیرمون اینجا بمون خواهش میکنیم تطیرش اما اما تطیرش مقرور و یدنده به اصرار اونا هم توجهی نکرد و رفت تاتریش تموم شب رو دوید صبح که شد پیرمردی رو دید که چکمه پوشیده کفش نمدی به پا کرده و یک کلاه پوستی به سر گذاشته پیرمرد که چوپون بود از تاتریش پرسید دختر جون کجا میری تاتریش نگاهی به پیرمرد انداخت و گفت من من جای رو ندارم میتونم پیش تو بمونم پیرمرد که تنها بود با خوشحالی گفت البته دخترم البته خیلی خوش اومدی تو مهمون عزیز منی من همیشه آرزو داشتم دختری مثل تو داشته باشم و امروز به آرزوم رسیدم حالا آه، حالا چاخترین و بهترین گاوم رو سر برم و با اون یک قضاگ خوشمزه برات درست می‌کنم دخترم تطریش با شنیدن این حرف عصبانی شد و فریاد زد وای وای تو میخوای با قصد پیشپند منو کثیف کنی نه نه نه نه نه پیش تو نمیمونم پیرمرد مهربون از این حرف و رفتار تطریش رنجیده شد تاتریش دوباره به راهش ادامه داد و پیرمرد مهربون با حسرت قدمهای شتابان اونو دنبال کرد تطریش از کوه ها و بیابون های زیاد گذشت و رفت و رفت و رفت تا به انبار بزرگ رسید موش های نزدیک انبار نشسته بودن اونا با دیدن تطریش پرسیدن کجا میری؟ تطریش که سخت خسته و گرسنه بود با بیرعمقی گفت خب من, من, من جایی رو ندارم میتونم پیش شما بمونم خیلی خستم و گرسنم خیلی آه. موشا با خوشحالی گفتن خوش اومدی ما خیلی خوشحال میشیم که تو مهمون ما بشی ما برات غذای خوشمزه ای از گوشت گنجشک درست میکنیم تاتریش که سخت گرسنه بود چیزی نگفت و موشا شروع کردن به درست کردن غذا آفتاب که غروب کرد موشا بشخاب کوچیکی جلوی اون گذاشتند تاتریش با تکه گوشتی که در بشخاب بود سیر نشد و یه آن یاد غذاهای خوشمزه افتاد که خواهراش یعنی همون نه دختر چوبی براش میپختن با حسرت آهی کشید اما دیگه چاره ای نداشت اون از خوهراش خیلی دور شده بود فردای اون روز تطریش با صدای خشخش از خواب بیدار شد و فریاد زد وای! آ... آ... وای! شما, شما دارین چیکار میکنین؟ بله موشها، ها های لباس تاتریش و پیشبند قشنگش رو به دندون گرفته بودن و میجویدن تاتریش فریاد زد چرا لباس های قشنگ منو میخورین؟ شما خیلی برجنسین مثل, مثل خایر نه نه نه مثل خایر نه اونا خیلی مهربون بودن موشها ها همونطوری که در حال جویدن لباس تاتریش بودن گفتن ما م... چیزی برای نهار نداشتیم سبونم که نخورده بودیم اما خب لباسایی تو خیلی خوشمزه خوردن نگرم تا لباساش رو محکم در دست گرفت از جا پرید و گفت اه اه اه اگه اگه لباسایی منو بخورین اون وقت من چی بپوشم موشا جواب دادن مهم نیست بدون لباسم میشه زندگی کرد ولی بدون غذا هرگز تاتریش قبل از اینکه که موش ها تموم لباس های قشنگش رو بخورن پا به فرار گذاشت اون در حالی که گریه میکرد با خودش میگف <تصفيق> <تصفيق> از این به بعد مثل خواهرام میشم هرچی خوردن من هم میخورم با اونو کار میکنم و دیگه هیچ وقت به مادرم شکایت نمیکنم هیچ وقت تاتریش همچنان میدوید و موش ها هم همچنان دنبال اون میدویدن و می گفتن. آه، آه، آی آی لباسهی تو خوشمزه است کجا میری نهارو ما رو کجا میبری برگرد برگرد خیلی لباسات خوشمزه است برگرد افثانه تاتریش رو براتون نقل کردم از سرزمین ترکمنستان برگرفت از کتاب افسانه‌های های مردم دنیا با ترجمه از عبدالرحمن دیجی محمد قطا و فتولاخ دیدبان واقعا راز افسانه‌ها در چیه؟ در سادگی و روانی اونها در ماجره های تلخ و شیرین اونها واقعا در چیه؟ بر هر چه هست اینه که افسانه‌ها یادگارهای ارزشمندی‌اند که ما رو با پدران و مادران باستانیمون پیوند میدن و این خیلی زیباست. هزار افسون کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالهپور، ویراستار صهیلا کریمی، اجرا مهران دوستی، سدابردار محسن فرهانی. یه کننده زهرا بدالله زاده تا افسانه دیگر بهرو